شرکت توسعه پترو ایران هلدینگی تخصصی در حوزه اکتشاف، توسعه، تولید و گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کند. این شرکت ابتدا با مرکز ثبت در انگلستان، جزیره جرسی تأسیس شد و سپس مرکز اصلی شرکت مادر به مالزی منتقل گردید. پترو ایران مالک یا بهره بردار مجموعهی از دارایی‌ها واحدهای تولیدی و پروژه های زیرساختی کلیدی در زنجیره ارزش است و با اجرای پروژه های بزرگ داخلی و بین المللی نقش مهمی در توسعه ظرفیت های انرژی و افزایش صادرات کشور ایفا می کند در سالهای نخست شرکت مسئولیت اجرای چندین پروژه توسعه مهم در میادین نفت و گاز کشور را بر عهده گرفت از جمله توسعه فاسهایی از میادین دریایی و خشکی، احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز و راه اندازی واحدهای فراورش. بعد سالها، پترو ایران در پروژه های کلیدی، نظیر توسعه میادین مشترک، بهین سازی، تولید و سرمایه در زیر ساختهای نقش نقش آفرینی کرده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موجریان اصلی پروژه های انرژی کشور تثبیت کرده است. در سال 1375 فعالیت خود را به عنوان پیمان کار عمومی برای توسعه میدانهای نفت و گاز آغاز کرد. در سال 1380 با برداشت اولین اضافه تولید نفت از میدان سلمان نقطه اطفی در بهره برداری عملیاتی از پروژه های دریایی رقم زد در سال 1390 پروژه طرح سلمان را با موفقیت به بهره بردار تحویل داد. در سال 1395 صلاحیت رسمی در حوزه اکتشاف و تولید توسط وزارت نفت تایید شد. در سال 1402 قرارداد حفاری 9 حلقه چاه در میدان گازی پارس جنوبی را امضا کرد. شرکت به صورت سهامی خاص فعالیت می کند و مرکز اصلی آن در مالزی است. سرمایه اولیه 10000 پوند بود که اخیرا به 80 میلیون دلار افزایش یافته است. شرکت دارای اختراع فرمولاسیون سیال شفاف و با چگالی بالا برای چاهای نفت و گاز است. پترو ایران سه قرارداد دولتی مهم با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره دارد. مدیران شامل علی رضا صادقی، عبداللهی سرپرست و عضو مدیره رامین حاتمی، عضو مدیره با فعالیت در شرکت ملی نفت ایران سپهر سپهری، نماینده عمده شرکت در ایران، رضا خرازی نماینده شرکت در ایران و علی دقایقی مدیر عامل هستند. تصحیلات مالی شرکت سفر است و زمان ها قابل توجه و فاقد اعتبارات اسنادی است. منابع مالی با بانک تجارت ندارد. شرکت های زیر مجموعه مانند توسعه پترو ایران کیش و دیریلینگ اینترنشنال لیمیتد زمان های محدودی دارند بدون فعالیت مالی با بانک تجارت. شرکت‌های مرتبط مانند شرکت ملی نفت ایران و مهندسی و ساختمان صنایع نفت فعالیت مالی قابل توجهی با بانک تجارت دارند. شرکت توسعه پترو ایران با نقش استراتژیک در پروژه‌های نفت و گاز، ستون صنعت انرژی ایران است. بانک تجارت می‌تواند با تأمین مالی پروژه‌ها و ارائه خدمات ارزی، همکاری خود را تقویت کند، اما باید با احتیاط وارد شود.